<تصفيق> اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ, يغير <بأنفسه> طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت دوازدهم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن می پردازد. در این راستا برنامه دوازدهان رو به موضوع دیه و قصاص اختصاص دادم دستگاه عریض و طویل روحانیت شیعه و تصنن با جعل احادیث روایات سرابا مجعول و مکذوبه و توجیهات سخیف و بیپایه و مزهک پیرامون موضوع دیه مدعیه که دیه زن نصف دیه مرد محسوب میشه و جالب اینه که در مورد تفاوت این موضوع در قرآن کریم به عنوان موسختنین ادله و مرجعیت اسلام هیچ گونه آیی وجود نداشته بلکه تفاوت مذکور ساخته و پرداخته محدثین و محرفین فرقه های زاله مزله مذهبی می باشد قانون برابری قصاص مرد و زن در آیات 178 الى 179 سوره بقره از سوی حق تالا دقیقا مشخص کردیده یا غیوها الذین فبعيكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اعفى له من اخيه شيء فانتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ال القصاص ترجمه آیه ای کسانی که ایمان آورده اید در قتل بر شما حق قصاص یعنی پیگیری مقرر شده آزاد به واسطه آزاد بودنش و خدمتکار به واسطه خدمتکار بودنش و زن به واسطه زن بودنش و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان به او بپردازد آنچه که گفته شد تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه در گذرد عذابی دردناک است و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است باشد که به تقوا گرایید قصاص به معنای پیگیری کردن است هر به افرادی تلقی میشه که تحت سرپرستی هیچ کس نبوده و آزاد محسوب میشن عبد به معنای خدمتکار میباشد عبارت قرآنی و اداء الیه به احسان یعنی دیه را به نیکی و احسان به خانوادی مقتول بپردازد ادا نماید الله متعال در قرآن کریم به موهدان تأکید میکنه که در اجرای مجازات و کردن مقابل به مثل موده و از حد اعتدال و میان روی خارج نشید سورین نحل آیه 126 شم. ترجمه آیه و اگر عقوبت کردید همان که مورد عقوبت قرار گرفتید متجاوز را به عقوبت رسانید و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است و باز در سوره شورا آیه چهل این گونه میده ترجمه آیه و جزای بدی مانند آن بدی است پس هر کس درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر عهدی الله است براسی او ستمکاران را دوست نمی دارد. حکم و فتفای الهی در مورد قتل قیر عمد یا قتل بر اساس خطا و اشتباه در آیه نبدو سوره نساء این گنون من گردیده سوره نسا آیه و ما کان لی مؤمن این یقتل مؤمنا الا و ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبت مؤمنا فتحري رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحري رقبة مؤمنة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 هیچ مؤمنی را نسیزد که مؤمنی را جز به خطا بکشد و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشد باید رقبه مؤمنی را آزاد کند و بپردازد به طور کامل به اهلش یعنی خانواده مختول مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مؤمن است قاتل باید رقبه مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است پس بپردازد به طور کامل به اهلش یعنی خانواده مقتول و رقبه مؤمنی را آزاد کند و هر کس رقبه نیافت باید دو ماه پیاپی پی به عنوان توبه از جانب الله روزه بدارد و الله همواره دانای سنجیده است در این آیه توضیح سه نکته مهم الزامیه که براتون اشاره میکنم یک واژه دیه به معنای نمودن دادن پرداختن است دوم رقبه رقبه به کسانی اطلاق میشه که زندگی اسارتوار داشته و الله سبحان به مؤمنان امری میکنه این افراد رو از این نوع شرایط زندگی نجات و رها بکنیم و جمع آن در قرآن کریم رقاب است چنانکه در سوری بلد آیات دوازه الی هم متذکر گردیده و میفرماید و وما ادراکم الاقبه فکر کن رقبه و تو چه دانی که آن گردن چیز رقبی را آزاد کردن سوم در مورد توضیح دو عبارت قرآنیه ودیتون مسلمتون الی اهلهی و نیز فدیتون مسلمتون الی اهلهی به معنای به طور کامل به اهلش بپردازد این نکات بایسی مورد توجه عزیزان قرار بگیره که دیه فقط در مورد قتل یا جراحات غیر عمدی اعمال میشه و در حقیقت برای جبران خسارت وارده که قاتل به صورت غیر عمد خطا یا اشتباه مرتکب شده بایسی هر آنچه که خانواده مقتول یا ورثه متوفا پیشنهاد بدن اونو به طور کامل پرداخت کنه و همچنین میزان پرداخت دیگر رو اولیاء دم مشخص می کنن. نه حکومت های شیعه و تسنن که برخلاف و حکم و فتوای الله عمل می کنن. و جالبینه که در آیات متعدد قرآنی الله سبحان امر به عف و بخشش میکنه نه انتقام و یسعلون که ماذا ينفقون قول الاف سوری بغر آیه دویست و و از تو میپرسند چه چیزی را انفاق کنند؟ بگو بخشش در آیی 45 سوره مائده پیرامون قتل و جراحات عمدی تناسب مجازات مورد تأکید قرار گرفته نه جنسیت و عقاید افراد سوری مائده آیی 45 و کتبنا علیهم فیها النفس بالنفس والعین بالعین والأمن فبالأمن والان فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح بصاص فمن قصد به فهو كفاره لله ومن لم يحكم بما انزل الله بهنائك هم ترجمه آیه و در تورات بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخم ها نیز به همان ترتیب قصاص یعنی پیگیری کردن دارند و هر که از آن قصاص درگذرد پس آن گناهان گناهانو خواهد بود و کسان که به موجب آنچه الله نازل کرده حکم نکردند آنان خود ستمکارانند دوستان گرامی توجه بفرمایید. الله تعالی میفرماید جان در برابر جان. یعنی اگر فردی چه مسلمان و چه غیر مسلمان چه زن و چه مرد به ناحق کشته بشه از سوی الله سبحان در راه پیشنهاد شده. یا قاتل رو متقابلا بکشه یا از حق قصاص یعنی پیگیری کردن اون صرف نظر بکنه. و قاتل رو مورد اف یا بخشش قرار بده و نکته مهمینه که در قتل ام دیه وجود نداره در سوری اسرا آیی 33 این گونه امری میفرماید ترجمه آیه و نفسی را که الله حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس کشه شود به سرپرست قدرتی داده ایم پس او نباید در قتل زیاده روی کند زیرا او از طرف شر یاری شده است باز در سوری ماعده آیی سی و دو فرموده ترجمه آیه از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا به کیفر فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان آوردند با این همه پس از آن بسیاری از ایشان در زمین روی زمین زیادروی میکنند و حسن خطام این که الله تعالی در سوره نسا آیه 93 در مورد کسانی که آگاهانه و آمدانه انسانهای ایماندار و موحد رو به قتل می رسونند و عده عذاب ابدی جهنم رو داده ترجمه آیه و هر کس عمدن مؤمنی را بکشد کیفرش جهنم است که در آن ماندگار خواهد بود و الله بر او خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخت است نتیجه اینکه با استناد و استشهاد به آیات متعدد الهی دیه زن و مرد با هم برابر بوده و ادعای مشکانی اهل مذاهب پیرامون عدم برابری هیچ گونه سنخیتی با فرامین و دستورات الهی در متن مقدس قرآن کریم نداره در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع قصاص و گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم دور نگهدار. یا یارب چینین باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته